وزیرنگاه برآمده عورمزد بخشاینده بخشایشگر مهربان مسوبه و او به به و, و او ماییت شی و ا داشان مزدی از دی از نزت اوشتریش و اوت کای شو اوگی ایری نای اشاون یا شرت یا نای چ ما چش ناوت را چفر از دخی مای چ شاون یا شاعرت یانای چ ما چش بیرز اتو اهو رای نفدر و اپام پس چه مزده زاوتا یا شناوترا یسناوی چه و احمای چه شناوترا یچه یا استا یای چه یتو اهو ویدیو زاوتا فرام امروته چه فرا اهور مزدا و اشبانهni借ما نما اشبانه زرت عشتره معنه اشبانه اشبانه اشبانه زرت عشاهانه اشبانه افرفاčیم نما ایده همیشه اiringی ا �د اصلنا you need اشبانه اونه больш سوره ا و تو اخیل تق Travis سم یا توش تمم یزاتنام هنگنوش تمم اشعارت وام عین سانس تمم جغموش تمم مشانو اشعارت وار تو فریتیم یزمایده اوزاییرین ما شبانه مشایراتوم یزمایده زاوتهاور ما شبانه مشایراتوم یزمایده حوا ناونه ما شبانه مشایراتوم او طریقشم آشنا میشه را تو میزمیده فر بر تاورم آشنا میشه او شاور زه شبنم شه راتوم زمده فرت ویریم دخی هم چه بنمشه راتوم زمده استراوش مانگ هم چهبره چرا او چ زمده اقر ر روچهی ازده افر از انگ هاام چهخ اوترم ازاعدهنی و ناش ساد رادری و تو هیتی اوورزم شبنم شه راتومیهزمده. اپرم چت که شم یزم میده پیت یا بر زم شبنم شه اونو ستم یزم پیتی اسنی پیتی خشفنی یا صبره تابیو زد ترابیو داخلی مهارت و یاسناوی چه باهم چه داخلی مم چه عشبنم شه لاتوم یزم میده بر زن تم عورم کشتریم کشای تم آپام نپاوت تم عور و تم اسمم یزم اپم چه مزد زادت هم شانیم یزمهیده تبا ماتر مهوری مزده پوتر مشوانم شیراتوم یزمهیده از زادت رم هزه بیاه اینکنم ایمت بر اسمه شای فرستر ته مشوانم شیراتوم یزمهیده اپم نبتارم یزمهیده نایریم ایم سنگم یزمهیده تخمم دام و ایش یزاتم یزمهیده ای ریستانا و یزمیده یا اشانان فرابشا یا رتون برزنتم یزمیده یی مهور مزدام یو اشه اپنو تمم یو اشه جغموشت مو ویس بس را با را, را یزمیده ویس وارش ورشتش یا اوتنا یزمیده ورشتچه ورشم نچند ینگ هاتا مواتی اسنه پیتی ونگ ها مزده اهو رو بیتا بشاد هچا یانگ هم چاو تانس چا تا اوز چا یز می ده یتا اهو بریات ها رتو ششاد چیده چا و انکه نه دزدام نینکوشیهو تنه نام انکه اوش مزده آین شترم چه ها یا یم یایم دریگو بیو دادت واس دارن یتا اهو بریات ها رتو ششاد چیده و این که اش دست دام نیست که اش و هنر نامن که اوش مزداه این شترم چاهورا یا یم دریگو بیاد داد و استارن یاسنم چه بامن چاو جس چز وار چاو فری نامین بره زات و اهور نفیز رو اپام پس چه مزده تایا بو احمای از دست آوت هیا و شرم بوده اش نماسویش تا استی اش ده ماهی هیات شایی بایش نهیشم اه ماهی رایش جفتار نسچه تن بود در بته اهمایتن و از از دره اهمایتن و برترم اهماشتین پروش خاطروم ما یاس نام چیتر از این تیم اهمایی در قام در قوج تیم اهمایی و اجتماع و شام نام راو چنک به خاطرم اشم به به اهمایی و اشتال رم باش از نام برای برای باش از نام هزنگ رم باش از نام برای برای باش از نام از انگرم باش ازنام بی بری باش ازنام اشرم به با ایشتم اصیل آستی و اشتا همائی هیتشای و ایشتا ایشم جسه میوینک هم از دو جسه میوینک هم از دو جسه میوینک هم از دو امي اتاشت ای ورا عزای بری ترغنه او رضا تایی بنتیاز بن چاو پرتاتو تبا شیخ ذاته زروانه یکرانه زروانه درگو خذاتایی اش به اجتم سیوش داستی وش ده پیروز باد خرو هویجه وین مازدی اسناون پیروز باد خرو هویجه وین ما آزدی اسناون، پیروز باد خرو هویجه وحین ماضدی داستی ده اشام و و اجتماع سی و اشتال استیو اشتار مای یاتاشا و ای بر اسالت